خسرو با گوی فلک در خم چوگان تباد ساحت کون و مکان عرصه‌ی میدان تباد زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست دیده فتح ابد عاشق جولان تو ای که انشاء اتارد صفت شوکت توست عقل کل چاکر تو کش دیوان تو باد تیره جلوه تو با قد چون سرو تو شد غیرت خلد بر این ساحت بستان تو باد نبه تنها حیوانات و نباتات و جمع هر چه در عالم امر است به فرمان توبا